کتاب آه بازخانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام عبیدالله فرمود تاهانی را به بازار بردند و به زاری بکشتند. و بعضی گویند فرمود به کناسه بردند یعنی جایی که خاک روبه شهر را در درانجاری ریزند فریاد میزد ای آل مراد و او شیخ و سرور آن قبیله بود چون سوار می شد با او چهار هزار سوار زره پوشیده و هشت هزار پیاده بود و اگر همسوگندان وی از کنده و غیر آن به آنها می پیوستند سی هزار سوار زره پوش بودند با این همه یک تن از آنها را نیافت همه سستی نمودند و به یاری او نیامدند محمد ابن اشعس برخاست و با عبیدالله الله در حانی سخن گفت که تو منزلت وی را در این شهر می شناسی و به خاندان و قبیله او معرفت داری و قوم او دانند که من و دوتن از یارانم او را نزد تو آوردیم پس تو را به خدا سوگند میدهم او را به من بخشی که من دشمنی اهل این شهر را ناخوش دارم ابیدالله وعده داد که ببخشد اما پشیمان شد و فورا فرمود حانی را به بازار برید و گردنش بزنید او را بازو بسته به بازار گوسوند فروشان بردند او می گفت کجاست قبیله مزهج امروز مرا فریاد رسی نیست از مزهج مزهج کجاست که به فریادم برسد چون دید هیچکس کس به یاری برنخاست، دست خیش بکشید و از ریسمان خلاص کرد و گفت اسا یا کار یا سنگ یا استخانی نیست که مردی از خود دفاع کند؟ پاسبانان برجستند و بازوهای او را محکم بستند و گفتند گردن بکش گفت در این باره سخی نیستم و شما را در قتل خیش اعانت نمیکنم پس یکی از بستگان عبیدالله، ترکی رشید نام با شمشیر بزد و کاری نساخت هانی گفت «الله المعاد اللهم الى رحمت که و رزوانک یعنی بازگشت سوی خداست بار خدایا به سوی بخشایش و خوشنودی تو انگاه ضربتی دیگر زد و هانی را بکش. ابن زیاد امر کرد بدن مسلم را بیاویختند و سر او را به دمشق فرستاد و این اول بدنی بود از بنی هاشم که آویخته گشت و اولین سر از ایشان که به دمشق فرستاده شد سر مسلم و حانی را به همراهی حانی ابن هیوه به دمشق فرستاد و آنها را از دروازه دمشق بیاویختند یزید نامهای به سپاسگزاری او فرستاد و نوشت مرا خبر رسیده است که حسین به کوفه می آید و در میان همه زمانها زمان تو و در همه شهرها شهر تو و در همه حاکمها تو به دین مبتلا شدی پس پاسگاه ها مرتب کن و نگهبانان بگمار و به پای و پاس دار و به تهمت مردم را دربند کن و به گمان بگیر اما تا کسی با تو ستیز نکند وی را مکش و هر خبر تازه را سوی من بنویس الله و این آزمایش است برای تو یا آزاد میمانی یا حکم میکنم که پدرت برادر معاویه نیست و تو به بندگی باز میگردی محمد عشعس به ایاس عصل اصل که مردی شاعر بود و بسیار به زیارتش میآمد گفت به ملاقات حسین بیرون رو و این نامه به او برسان و آنچه مسلم ابن عقیل گفته بود در آن نامه بنوشت و مالی به او داد و گفت این توشه راه و این چیزی که ایال خود را دهی عیاس گفت مرکبی خواهم که شطور من لاغر شده است محمد گفت این هم راهله با پالان سوار شو و برو آن مرد سوار شد و به استقبال حسین رفت پس از چهار شب در منزلگاهی به نام زباله به او رسید بدن مسلم و حانی را گرفتند و در بازارها میکشیدند. خبر آنها به بنی مزهج رسید بر اسبان خیش نشستند و با آن قوم کارزار کردند مسلم و حانی را از آنها گرفتند قسل دادند و به خاک سپردند قتل میسم ده روز پیش از آن بود که حسین به اراغ آید. چون فرمان به داراویخدن او صادر شد با بنگ بلند فریاد زد ای مردم هر کس خواهد حدیث سر از امیر بشنود نزد من آید. پس مردم بر گرد او فراهم شدند و او به حدیث کردن اجائب شروع کرد. و از بود. چنان که پوست بر تنش خشک شده بود از عبادت و زهد. و گفت که امیرالمؤمنین مرا بخواند و گفت چگونه ای, ای میسم وقتی آن مرد بی پدر که بنی امیه او را به خود ملحق کردند یعنی عبید الله ابن زیاد تو را بخاند که از من بیزار گردی. گفتم یا امیر المؤمنین من هرگز از تو بیزاری نجویم. گفت در این هنگام تو را بکشد و بیاویزد گفتم شکیبایی میکنم که این در راه خدا بسیار نباشد گفت ای میسم پس با من باشی در درجه من روزی امیر المؤمنین در حضور مردم بسیار از اصحاب خود که بعضی شاک و بعضی مخلص بودند گفت ای میسم پس از من تو را بگیرند و آویخته میشوی. و چون روز دوم شود از دهان و بینی تو خون روان شود چنان که ریش تو را خزاب کند و چون روز سوم شود ای بر پیکرت فرو برند و از آن درگذری پس در انتظار آن باش و آن جای که تو در آنجا آویخته شوی بر در خانه امر ابن حریص است و تو یکی از ده نفر هستی که مصلوب کردند و دار تو از آنها کوتاهتر و تو به زمین نزدیکتر باشی و من آن درخت خرما که تو را بران آویزند به تو بنمایم پس از دو روز آن را بنمود و میسم پیوسته نزدیک آن درخت می آمد و نماز میگذارد. میگفت چه مبارک نخلی من برای تو آفریده شدم و تو برای من روییدی پس از کشته شدن امیرالمؤمنین هم پیوسته به دیدار آن نخل میامد تا آن را بریدند تنه آن را میپایید و نزد آن میرفت و مینگریست و گاه بود امر ابن حریس را دیدار میکرد میگفت من همسایه تو شوم حق جوار نیکودار و امر نمیدانست چه میگوید میپرسید خانه ابن مسعود را خواهی خرید یا خانه ابن حکیم را میسن بر اسبی سوار میگشت، حبیب ابن مظاهر اسدی را نزدیک مجلس بنی اسد بدید، با هم به گفتگو پرداختند و گردن اسبان آنها به یکدیگر دیگر میخورد، حبیب گفت، «پیرمردی بینم موی از سر او رفته، شکمی بزرگ دارد، نزدیک باب و رزق خربوزه میفروشد، در محبت خاندان پیغمبر خود به دار آویخته شود و در بالای دار شکمش را بشکافند میسم گفت من هم مردی سرخ روی میشناسم که گیسو دارد برای یاری پسر دختر پیغمبر خود بیرون رود و کشته شود و سرش را در کوفه بگردانند. این گفتند و از هم جدا شدند اهل مجلس گفتند ما دروغگوتر از این دو مرد ندیدیم هنوز اهل مجلس پراکنده نشده بودند روشید هجری آمد در طلب آن دو و از اهل مجلس حال آنها را بپرسید آنها گفتند از یکدیگر جدا شدند و شنیدیم با هم چنین و چنان گفتند. روشید گفت خدا رحمت کند میسم را فراموش کرد بگوید که صد درم بر عطای آن که سر او را آورد افزوده شود آنگاه سرش را بگردانه مردم گفتند این از همه آنها دروغگوتر. و همون مردم گفتند روزگاری نگذشت که دیدی میسم را در خانه امر ابن هرئیس آویخته و سر حبیب ابن مظاهر را آوردند با حسین کشته شده بود و همه آنچه گفتند دیدی و میسم در همون سال که کشته شد عمره بگذارد بر اون مسلمه داخل شد اون پرسید کیستی؟ گفت میسم گفت بسیار از رسول خدا میشنیدم در دل شب ترا یاد میکرد. و میسم اون مسلمه را از حال حسین بپرسید اون مسلمه گفت در است. گفت با او بگوی دوست دارم بر او سلام کنم و انشاالله نزد پروردگار یک دیگر را دیدار کنی. اون مسلمه بوی خوش خواست و ریش میسم را خوشبو گردانید و گفت به زودی به خون خذاب شود میسم به کوفه رفت و او را بگرفتند نزد عبیدالله بردند به او گفتند این مرد گرامی ترین مردم بود نزد علی گفت وای بر شما این عجمی؟ گفتند آری الله به او گفت عین رب بک پروردگار تو کجاست؟ گفت بلمرساد در کمین هر است و تو یکی از ستمگرانی ابن زیاد گفت با این عجمی بودن هر چه میخواهی با بلاغت ادا می کنی. صاحب تو به تو خبر داده است که من با تو چه خواهم کرد گفت خبر داد که ما ده نفریم به دار میآویزی و چوب دار من از همه کتاحتر است و به زمین نزدیکترم گفت البته مخالفت او خواهیم کرد گفت، چگونه مخالفت کنی؟ قسم به خدا که آن را از پیغمبر و او از جبریل و او از خدای تعالی شنیده، تو مخالفت اینها چگونه کنی؟ و اونجایی در کوفه که آویخته میشوم میدانم و من اول در اسلام که بر دهان من لگام نهند. او را به زندان بردند و مختار ابن عبی عبیده سقفی با او بود. میسم به او گفت تو از چنگ این مرد به در می و به خونخواهی حسین بر و کشنده ما را می کشی. و چون عبید الله میسم را بخوان تا بدار دار از زندان بیرون آمد مردی به او برخورد و گفت چه حاجت به اینگونه رنج ها کشیدن میسم لبخندی زد و گفت در حالی که اشارت بدان نخل می کرد من برای آن آفریده شدم و آن برای من پرورشی یافته است وقتی او را بردار بستند مردم بر وی مجتمع شده بودند بر در سرای امر ابن امر گفت والله این مرد می گفت من همسایه تو می شوم. وقتی دار را برافراشتند کنیزکی را فرمود تا زیر دار او بروفت و آب بپاشید و بخور کرد. بند را در آن زمان بر گردن مسلوب نمیانداختند، بلکه با ریسمانی محکم بر چوب می و چوب را بر سر پا می کردند تا از رنج و گرسنگی و تشنگی بر سر دار جان می داد. و گاه بود که دو روز و سه روز زنده می ماند. و میسن بالای دار فضائل بنی هاشم می گفت. به ابن زیاد خبر بردند که این بنده شما را رسوا کرد. و گفت او را لگام بندید پس اول کس بود در اسلام که لگام بر دهان او نهادند و در آخر روز خون از دهان و بینی او روان گشت و چون روز سیوم سی شد هربه بر پیکر او فرو بردند او تکبیر گفت هفتن از خرما فروشان اجتماع کردند و با یکدیگر وعده نهادند تا بدن میسم را ببرند و به خاک سپارند شبانه آمدند پاسبانان پاس میدادند و آتش افروخته بودند. آتش میان پاسبانها و خرمافروشان مانع شد که ندیدند و دار را از جای برکندند با بدن میسم بردند در محله بنی مراد آبی روان بود و بدان جا به خاک سپردند و دار را در خرابه افکندند. پاسوانان چون صوب شد سواران فرستادند و او را نیافدند. حسین رفت تا به تنعیم رسید در دو فرسخی مکه. کاروانی از یمن می آمد که حاکم یمن برای یزید ابن معاویه فرستاده بود و بار آن اسپرک بود و هلهای یمانی حسین آن مالها ضبط کرد و ساربانان را گفت هر کی خواهد با ما به آید کرایه او تمام دهیم و با او نیکی و احسان کنیم و هر که خواهد بازگردت کرایه تا این مکان به او بدهیم پس جماعتی حق خود گرفتند و بازگشتند و هر کس به اراغ آمد کرایه او تمام بداد و لباسی نیز به او ببخشید عبدالله ابن جعفر نامهی برای حسین فرستاد با دو فرزندش آون و محمد و نوشته بود اما بعد تو را به خدا سوگند که چون نامه مرا بخوانی خانی بازگردی میترسم در این راه اتفاقی افتد که موجب حلاک تو و استیصال خاندان تو گردد و اگر تو حلاک شوی نور زمین خاموش گردد که امروز تو علم و حادی راه یافتگان و امید مؤمنانی در رفتن شتاب مفرمای که من در اثر نامه برسم الله تعالا <تصفيق> عبدالله جعفر نزد امر ابن سعید ابن آس رفت و امر ابن سعید عامل یزید ابن معاویه بود بر مکه و به او گفت نامهای سوی حسین فرست و او را امانده و به احسان و سلط امیدوار ساز و در نامه پیمان محکم کن و به جد بخواه تا باز گردد و دلش بدان آرام گیرد امر ابن سعید گفت تو خود هرچه خواهی بنویس و نزد من آرتا مهر کنم و عبدالله بنوشت و بیاورد و گفت آن را با برادرت یحیی ابن سعید بفرست که اطمینان او بیشتر شود و یقین بداند از جانب توست. یحیی و عبدالله ابن جعفر به حسین رسیدند و نامه را تسلیم کردند. خواند نامه امر ابن سعید به حسین این است. بسم الله الرحمن الرحیم. از امر ابن سعید سوی حسین ابن علی. اما بعد. از خدای خواهانم که تو را باز دارد از چیزی که موجب هلاکت تو باشد و راه نماید تو را به راه سواب. شنیدم که روی به اراق داری و من تو را به خدا پناه میدهم از مخالفت و میترسم که تو به دین جهت هلاک شوی عبدالله ابن جعفر و یحیی ابن سعید را سوی تو فرستادم با آنها نزد من آی که تو را امان دهم و نیکویی کنم و صلت دهم و در پناه و امان ما نیکی بینی و خدا بر چه نوشتم بر من گواه باشد یحیی و عبدالله چون بازگشتند گفتند نامه را به نظر او رساندیم اصرار کردیم شاید بازگردد از را که من در خواب رسول خدا را دیدم و به کاری مرا فرمود که ناچار باید به با انجام رسانم چه زیان بینم چه سود گفتند این خواب چیست؟ گفت با هیچ کس نگفتم و باز با کسی نخواهم گفت تا به لغای پروردگار فائز گردم. چون عبدالله جعفر از او امید گشت، پسران خود اون و محمد را فرمود ملازم او گردند و با او بروند و نزد او جهاد کند. حسین به امر ابن سعید نوشت، اما بعد، آن کس سوی خدا خواند و عمل نیکو کند با خدا و رسول مخالفت نکرده است و تو مرا به امان و بر و سلت خاندی بهترین امانها امان خداست و او در آخرت کسی را امان ندهد که در دنیا از او نترسیده باشد از خدا خواهیم که در دنیا ترس او داشته باشیم که موجب ایمنی باشد در روز قیامت و اگر قصد تو از این نامه سلت و احسان با من بوده است خدا تو را جزای خیر دهد در دنیا و آخرت و حسین روی به جانب اراق داشت و به شتاب می راند و به هیچ چیز اینا نمی گردانید تا به ذات عرق فرود آمد و ذات عرق جایی است که حاجیان اراقی از آنجا احرام بند. سر کلام امیر در آن وقت ظاهر شد که میگفت گفت و نزد شما آید سوار ناغه تند رو تقصیر حج و عمره نکرده است و او را میکشند. حسین بشربن غالب را دیدار کرد از عراق می آمد از مردم عراق بپرسید گفت مردم را دیدم دلهاشان با تو و شمشیرهاشان با بنی امیه حسین گفت برادر بنی اسدی راست گفت هرچه خدای خواهد همان شود و هرچه اراده فرماید به همون حکم کند. چون به عباید خبر رسید که حسین از مکه روی به جانب کوفه دارد حسین ابن تمیم صاحب شرطه خود را به قادسیه فرستاد و میان قادسیه و خفان از یک سوی و قطقتانیه از جانب دیگر سواران بگذاشت و پاسگاه مرتب کرد و با مردم گفت اینک حسین به عراق خواهد آمد خبر به ولید ابن اطبه امیر معزول مدینه رسید که حسین رو سوی اراق دارد به ابن زیاد نوشت اما بعد حسین به جانب عراق می آید. او پسر فاطمه و فاطمه دختر رسول خداست مبادا آسیبی به دور سانی. و شوری بر پا بر سر خود و خیشاونداند که خاص و عام هرگز آن را فراموش نکنند و تا دنیا باقی به هیچ چیز دفع آن نتوان کرد ابن زیاد التفاتی نمیم.